الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين لا تضيعوا على ظالم اجتمعنا اللهم اشفنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين بله، از کنم که این روایت شماره سه رو تصادفه نخوندیم رفت کردیم از این بابا خیلی روایت طولانی، سندش هم واضح نیست لیکن لطایف خوبی داره مثلا کسانی که دنبال بیشتر مضمونند تا مضمون خبر خیلی لطایف خوبی راجعه به حقیقت گناه اینا داره و خیلی طولانی هم هست حتی خود مرموهای عربانی با اینکه که خیلی وقتا حدیث رو استخراج میکنه میگه ولی حدیث طبیلون جده هم راست حدیث بسیار تو دوست صفحه حدیثه اما لطایفی داره حالا یه واردون شده دیگه باید کلون دیگه بحث آدم تعدیب رو کنن خود دارم مراجعه خوبه و شروع یعنی که از که اما مرموم کلینی بابی به نام کبائر داره در کتاب ایمان و کفر و از زوایای مختلفی مطرح میشه این یکی در کتاب کلینیان زوایای زوایای مختلف آورده سرشینه این یکی چه مثلا کبائر و سوایای اصلا تقسیم کوارثا درست یا نه معیار کوارث که الا یک بحثش هم بحث کلامی بود که آیا مرتکب کبیره م... مؤمن است یا مسلم است یا کافر است این سه تا احتمال بود در دنیای اسلام بعد از رسول الله الیوم الاغضا سه احتمال در مرتکب کبیره بود یکی که به اصطلاح خودشون نصرت می‌داد به مرجعه می گفتن این مؤمنه مرتکب کبیره مؤمنه یکی که راه اهل بیت که این مسلم هست اما مؤمن نیست یکی هم راهی بوده که خوارج راست بودند بودن مثلا مسلم نیست کافر مرتکب کبیره کافر پس بحث ارتکاب کبائر و معرفت کبائر غیر از جهت فردی غیر از جهتی که در در عدالت بوده مثلا بحث متعارفشون اهل سنن در مساله کبائر بردود در روی بحث شهادت و اینکه آیا شهادت مرتکب کبیره قبول میشه یا نمیشه مرتکب صغیر شهادت دیگر فرض می پس این زوایای مختلفی داره روایاتی رو هم که بحث مربوط به کله میذن جهت انصافا زبایه مختلف است بعد از جمعی روایاتی که ایشون رو عورده کردتی این زبایه در کتاب در بحث فقهه به یک مناسبتی مرمونه صاحب وسائل عورده خود مرمون کلینی اینجا توی باقل کبائل نیورده این روایته یه روایتیست از کتاب حلوی از کنم این سنن در کتاب سابه ما ابن نبی امیر، انه همماد انه حلبی که ظاهرن کتاب کابل حلب می باشه راجب این کتاب هم جای خاصی صحبت کردیم حالا جاش دیگه اینجا نیست همماد هم از کردیم همماد ابن عثمانه این یک راز رمزی بوده مثلا ما الان میگیم آل خویی خب اونی خویی به حضب لغت این که از شهر خویی مدینه خوچه خب ازاران نظر مکنی از این شهر باشه لکن خب باید باید شخص خ یا معلوم آقای گروه به شخص مریم و وقتی در اون زمان رس بوده ابن عوی و مره. حماد عنا حلوی مرادشون حماده اون عثمان باشه باز داریم حماد عنا حریز اون حماد حمادر این ایساست این که اسمی مطلق آمده میشه این شاهد برای این است که این شهرت داشتیم وقت ما سابقا یک توضیحی دادیم این شهرت در چه میارهاییست یکی اجتماعی. یکی شهرت در بین مهندسینه و رباطه یکی شهرت در کتب رجاله یکی شهرت نسبیست به این معنا ابن ابی عمر انا حماد حمله رو رو میشه هر جایی اینجوری باشه و یک شهرت هم مثابقی تصور کرده که اگر نجاشی اسم کسی رو برد این سرو شهرت میشه، اونو ما قبول کردیم که که کشورت نمیشه. اینشاالله اگر جایی پیش آمد که یک اچل به توضیح داشته باشه، حالا خیلی اجمال عرض کردن برای کشف مشترکات این خوب ای بود خیلی مجب است کرده. یک جایی که کار خیلی گیر بکنه اونجا این ضبط توضیع در این روایت که در باب قوطه در ممااض همان فرمود لاستق در زم بکل عظیم شما مغال کل زم عظیم نعظیم این رو مثلا آورن برای که مثلا معاید آر خویی باشه که سری و کبیر نداره اینجور تغییر عظیم نه هر ضربی دو خاطر این که اسیان خدا تعلیم این را به بحث کبیر و سری نداره حدیث شماره شیش آن انهو... یعنی علی بن ابراهیم یعنی مرحوم کریمی آن علی بن ابراهیم آن محمد بن عیسای یختینی که توضیح دادیم ان یونوس ان عبدالله ابن مسکان ان محمد ابن مسلم به نظر ما این حدیث صحیحه یعنی کاملا هیچ مشکل نداره به ابن حاشم کاملا قابل اعتماده هیچ مشکل خاصی در این جهت این روایت وجود نداره ان عبدالله ابن مسکان آله بله ابو عبدالله علیه السلام صحیحه هل کبائر و سب قتل مؤمن متحمده با قرینه وقیه روایات میفهمیم مراد اون نیست که بیشتری داره اکتر کبائر دیگه و این در کتاب یونوس بوده احتمال چون خیلی روایات باب از یونوسه یا یونوس یک چیزی در شهادات داشته یا در کبائر داشته یا در گناه داشته من الان تو زهتم کتاب یونوس نیست یک چیزی چون زیاد اسم یونوس در اینجا هست و خصوص مرهوم کولینی تو این باب زیاد از یونوس نقل کنه زیاد و در کتاب کافی اگه خدمتون باشه یه خود صاحب وسائل هم همین کار کرده حدیث شماره هفت و اسناد ان یونوس در کتاب کافی اقتلا به اسمش کرده اون حدیثی کار در یونوس انکلان یونوس دیگه بعدیش کنه که یونوس که نشون میده از خود کتاب یونوس مستقیمه و توضیحات خیلی به خوبی رو ارز کردیم که این کتاب یونوس در بین اومنی ها خیلی جا افتاده بوده این کتاب نسخه محمد بن ایساست که مرمول کلی نرخون اون در آخرش هم داره در این روایتی که از محمد بن مسلمه و کل ما الله علیه النار این قاعده کلیش هم در کتاب یونوس آمده هم در شماره یکه باب چل پنج هم بود باز یونس اند انوموس فر لكن نبی بسیار قال واجتماع الكبائر التي اوجب الله و اگر ملاحظه بکنیم اوضاع یونس رو یونس اصولاً روایت میشه اما میاد که شواهد کتاب و سنت داشته باشه معلوم میشه ایشون این مطلب رو قبول داشته یونس یعنی ببینید این که میگیم یک مبنا بین اصحاب ما راه میفته اساسش اینه اختلاط در روایات بوده و اصحاب ما اختیارات داشتن مرحوم یونوس اختیارش اینه که ما لا علیه این مکتب اول بغداده یونوس مکتب اول بغداده در مکتب دوم بغدادم همین جا افتاده از مکتب دوم بغداد هم فعلا به ما رسیده که در میان اصحاب ما این قاعده جا افتاده این دو ما برای نمونه بحث اینجا مطرح می که در کلیه روایات این ظابطه پیش شما باشه و بنی اسناد این یونس در کتاب کلینی از خدی نه یونوس ان خب عبدالله بن اسناد. در یونس انتخاب کرد که خوب داره سمت از. هنر عبدالله بن سنان قال سمت ابو عبدالله می‌گوید این نه من الکبار این بهتر منو الکبار این من الکبار. و بعض و قاله و عدرویه این احتمالاً بر عدرویه کلام خود یونس باشه احتمال داره. اکبر کبائر اشر الله یعنی احتمالا در خود کتاب یونس در ذیل حدیث این طور بوده یعنی به عبارت دیگر، کبده قطع اگر کتاب یونس پیش می‌آورد، می‌خوایم این کافی بکنیم. برای حدیث عبدالله من یک شماره می‌ذاریم، برای رویه شماره دیگه می‌ذاریم. یک شماره الان با شماره جدا کرده. در کتاب اینجا در ذیلش اینجا شماره جدا کرده. حالا در کتاب کافی ذیلش آمده ظاهرا در کتاب یونس روایت مرسلی بوده. بعض روایت شماره 9 این روایت شماره 9 رو هم از یونس نقل میکنه که عرض کریں۔ این شماره 9 بیشتر ناظر به مسئله کلامیه. بحث معرفت و کبائر نیست. نیست. هم خیلی لوچن نیست. بیشتر ناظر به بحث کلامیه. که اگر انسان اعتقابه کبیر کرد ایمان از او میره نه اسلام خوب درست مپنی و من شبه برخم من منه ایمان این در مقابل اون مکتبی که میگفت خرج منه اسلام خوالش و در مقابل اون مکتبی که میگفت نه یه احرود منه ایمان مرجع اینه که ما قاعده به حد وصل شدیم روشن شد این روایت من نمی فقط اشاره کنم چون خیلی وقت تو نمی بگیریم چون اینا فوائدیست که شما رو با میراسهای اصحاب و اینکه هر روایتی چه بابی داشته چه نقطهی داشته براتون آشنا می روایت شماره نو و روایت شماره ده برای این دوتا نازر بون مسئله کلامی هستن البته شماره ده رو مربوم یونوس از محمده نه عبده شنیده لکن خود مرحوم کلینی از راه دیگری ان علی ابن ابراهیم حتی شماره بشه اینجا شماره بشتاد در کتاب کلینی جدا شده ان ابن ابی امیر ان ماهیت ده مواد از خوار ابن یا صبا ابن سیابه قال كنت ان دری عبدالله فقال له محمد ابن عبد الله پس این دو تا فرمش روشن شد مقایله این دو تا متن خوبه چرا؟ چون یکیش از کتاب ابن عبی عمر یکیش از کتاب یونسه. فقط یونس مستریم از اون شده ابن عبی عمر به دو واسطه از اون اعظم میکنه این برای جهات حدیث شناسی شما خوبه مفید مراجعه بشه خوبه بله حدیث چماره بله. یازده و باز هم انهو اصلا باز هم یونوسه چماره یازده هم یونسه. انها عن ان محمد ابن ایسا انها برانده و علی ابن ابراهیم ان محمد ابن ایسا ان یونوس ان اصحاب ابن انمار ان عبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل هست کردیم بعد از آیاتی که روازی که در باب کبائر در زیر این آیه سوره نجمه اشتباه نشه غیر از آیه سوره بساد نسا الَّذِينَ يَشْتَنَوُونَ كَبَائرَ الْإِسْمَ الْفَوَاهِشِ إِلَّا لَّمَن بقال الفواهش از زنا و سرقه این عبارت که کمی ابهام داره این روایت شاید این روایت بخواست سه قسم بکنه خوب دقت بکنید یعنی, یعنی مجموعه شاید بیونه سه قسم قائل بوده شاید نیم که مرا نسبت بدیم. یکی کباهر بوده مثل همون قطع نفس یکی فواهش بوده مثل زنا و سرقه چون تو بعض روایت داریم که زنا و سرقه از کباهر نیستن این احتمال داره این ربایت یونوس ناظر به این باشه احتمال داره و یک قصه هم سوائره دقیقه این هست و که انصاف خیلی این خیلی مشکله اما ایا اگر این تقسیم سلاسی رو قبول کردیم پس درناب بگذاریم که یونوس چون از کردیم یونوس با شواهد کتاب و سنن خیلی سرکار داره یونس یونوس رسولت اینجوریه شاید یونس رحم الله معتقد بوده که ما سه گرسن داریم روشن شد کبائر داریم فواحش داریم و سغائر داریم شاید شو نظر اونورا که شو این بوده ما اگر این نظر درست باشه بخیر نظر یونس گفت اشتهار علالم بناء بکنید غیبت رو بیشتر و تواهش میشه قرار بدیم یعنی اینی که مرحوم شیخ میگه روز کبائر بعد نهی کرده از بزرگان معاصرین گفته نه دلیل نداره که جزبه کواهر باشه با شواهد موجود جزبه فواهش نگاه میکنی بنا چرا چرا جزبه کواهرش میشه چون امر واضحی یه گناهان واضح گناهان حاله گناه هست میدونم حد دارم. من اون با مراعات لفظ فواهشه که معنی زهور و بروز یا تفاه... تفاهشه مثلا خونی که تفاهشه دا تفاهشه در یعنی خیلی علنی و واضح اون وقتی یک بند دیگه که هست که احتمالاً البته این مطلب درسته اندهی از اهل سنب لمن رو به معنای سخائر گرفتن هرست میکنم. روایات هستو رو تو همه محیط خودش معنا بکنه ادوهی از دهر سنده لمن رو به معنای الا لمن لمن یعنی صفایه در روایات موامده لمن اهم من از صفایه حتی کبار هم شامل میشه خود اخیر کرد این در تفسیر اخیر بی و روایتش یکی دوتانی زیاده اگر همین تفسیر برهان هم نگاه کنید در جلده چار تفسیر برهان روایتش عورده زیاد عورده من نگاه کردن انصافاً میشه انسان اطفینال پیدا بکنه که در نخله دهو بید لمن به معنای سوائر نیست از کلماتی که روز اول اسلام آوردیم بحث می‌خوام بشن دیگه بخوام می‌گم روایت بگیم طول میکشه. از روایات اهل بیت این معنا استفاده میشه لمن یعنی گناهانی که طلمو به انسان ای انسان بعد بعدهینه مثلا ممکنه خدای نکردی گناه کبیره انجام بده تا 5 12 روز یک هفته دو, هفته دو هفته یک ماه دیگه انجام نده بازه کبیره لمن اینه لمن گناهی که از انسان صادر میشه کبیره که اونم باید اجتناب بکنه واجبه لکن گفت که اله یعنی اصلای تو بگیم که مثلا انکارن لربوبیت نه این که بخواد گناه نمیخواد مدنم باشه نمیخواد ارتکاب علم مسبه معصیه این دخل از علیه مثلا فی این من از زمان در روایات اخلبه لمم همون کباهره و که لمن بودن به عنوان که گاهی خوده نکرده مرتکب میشه ممکن یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه مرتقب نشه ده لذا خوب در خیلی که قال علمم ار وجل یوله مبنده فیستقفر من، این یستقفر الله اشاره به کبیره هست. و نزاع خوب دختر میکنیم آیه ای که در باب سریده و کبیره همون این تشتنه بوز نه این آیه اول بخشی که ما اون نباید باب کنیم اما روز اول اول به این آیه‌ایم تمسک شده، ادی از اهل سنت این آیه مبارکه رو به لمن رو زدم به سرایر، اما من هیصل مجبورن، چون یه رباتیشه من هیصل مجبور که از کم درکت ابو رهان امروز شودم و تهدید آورده. از روایات احلبه که این معلوم میشه لمن سغیره نیست کبیره ایست که احیانا تشد رو مند انسان احیانه هم یونه مزده زند فیستغفر الله من البته این حدیثیانش معتبره اصحاب نعمار صحیح فرست بلکه صحیح اصحابی صحیح خود گناه انجام داده یعنی این حاله یشتنمونیه که خودشون بنا دارن گناه دارن حالا گناهی کرد دیگه حالا مثلا یقیبتی کرد یه دروغي گفت فیاستغفر الله یعنی این یعنی حالا ببین نه نه نه کبیره را انجام داد نه کبیره این لمم لمم سراییه نیست کبیره ای سهوا و دروغ گفت یه دور قیبت استثنا فور مراد از کبیره در اینجا لغن صغیره نیست کبیره است که قضیه صورنده انسان فیاستثرون ای یستثرون بر کبیره بودنش دقت این اینو خاصم عرض بکنم که یه ما توضیحاتش از دادیم چون خیلی بحث کبیره ثغی طولانی شد فقط می‌خوام بگم این خود عبارات اهل بیت الا لمن حمل بر صغیره نشوده الا لغن نیست خود کوائل نوقتا این چرا به مکان این نظره به حدیث شماره 12 دو هم باز از مرحوم از کتاب یونس در کتاب کافی که این هم راجعه به بحثه ایمان و کفره حدیث شماره 13 روایت است از مسئلت ابن صدره مسئله توصیق واضحی نداره اما این احادیث خوب زیاد داره و واقت نظر از مشکل مسئله. مسئله این روایات بد نیست مجموعه است که چند بار ارد کردیم اقل اسناد من علوم به اسناد کلینی و حضر صادق یک کلینی از این احلا نداره احلا اسناد کلینی اولو به اسنادش همینه علی بن ابراهیم عن هارونه مسلم عن محمد نبی عبد که با سه در مروکلینی از امام صادق رحم میکنه و منشأ اولو و اسناد طول عمره سن زیان طول عمر اینجا حالا هارون مسلمه منشأ این اولو و اسناد چون عمره بسیاره ایشون طول عمر داشت و این روایات به اصطلاح سلاسیات کولینی سابقا در این روایات کبار نام برده شده و از شد که احتمالا مراد کبر باشه روایت مسعذر اگه بخواییم به دقت بگیم خودش توصیح نداره اما شواهد خوبی داره دو صفحه مسعذر زیاد هست صدقش باز بهتر از ببیه است. اطلاعات ما ازشان خیلی زیاد نیست حدیث شماره چهارده مرحوم کلینی از همون تریقی که داره از کتاب ابن فضال پدره از کلین سابقه ابن بوکیل به نظر افتادگی داره سخت داره چون ابن بوکیل بعید عبدالله این از امام باغم نرحب کنه سختی اینجا داره به هر حال حدیث شماره چهارده هم ناظر به مسئله ایمان و کفر همون کبیره داره اما به معنای ایمان و کفر حدیث شماره پونزده ان ان ان ان حماد. این حماده اینجا حماده ایساس به قلب فهم که مرهوم ابراهیم ازش نهار نکنه حماده ایساس. اون حمادی که ابن ابی عامل عامل حماده ان, حماد ان ربعی ربعی عبدالله ان فوزیل این حدیث بعد از حماد میشه بصری. اون تاریخ هم گفتیم علی ابن ابراهیم خود مرحوم کلونی که در قوم نوشتن علی ابراهیم قوم ابراهیم نهاشهیم در قوم لکن از کوفه آمده به قوم همماد کوفیه ربعی و فوزه بسری هم از کوفه رفته به بسر این عبدالله از کردیم از حدیث بسر رو که اینجا الان جاش نیست این هم نازل به ایمان و کفره سندش مع تاکه ناظر و کنیم حدیث شماره 16 عن الکشیید محمد استاد ایشان از اشعری قرب قوم. قمی ایش ان معللم محمد ایشان اهل در یعنی رابطه بین حسین محمد و تراس بصرس و کوفه ان الوشا وشا, وشا کوفیه معلم محمد توصیه نداره استاد سابقا به کامل زیارت توصیه میکنن که بعدا برگشتن توصیه واضحه نداره ان ابان این ابان ابان ابن عثمان و شاه حسن نهری و شاه از اجلای اطائف است و ابانم ابان ابن عثمان ان ابي از نظر به علو حسین محمد از اجلاض بحث نذری کرد حسین بن محمد و عامر اشعری قمی جزء اجلاص مجموعه جز مشایخ بسیار بزرگ مرحوم کلهی است ان عبی بسیر حالا بعد حدیث عبی بسیر رو می اشاره می کنیم ان عبی عبدالله سمیع تویغور و سبعه و ارز کردیم توضیحات شدید که شرک دادیم تکرار نمی کنیم باز دو مرتبه به اصنا این به نظر حدیث و کلینی تختیعش کرده یه چیزی توش افتاده من می روی قاله ابا لذیراده آه ابو لعنه ابا فکره کنم این یک از اینجا مثلا امام شروع کنه مثلا قال الكبائر, المنن الكبائر المنن. مثلا یه چیزی وا تو این حدیث استفاده باشه اینم عذ کریم گویا کلهینی یه قسمتی از حدیث هست میکنه می‌کنه به اعتماد با عنوان با در این حدیث شماره 17 یک ابهامی داره این مضمون بی جای دیگه که یکی از کبائری هست که انسان پدرش رو فحش شده سوال میمیدیسی پدرش رو فحش میگه تو پدر کسی پدر تو رو شده از این بودیم این مضمونش اینه با در جور شده نقلی کلام ما داریم خیلی مذهل روشنی نداره. حدیث شماره 18 حلی عبی حلی ابن ابراهیم حلی ابن ابی عمر محمد ابن بله این روایت الان حال محمد ابن حکم تو زهنم نیست آن به نظر بد نباشه سقه از قصر ابن که الان تو زهنم نمیاد. ارز کنم که این از موسعون جعفر این هم او مسئله ای ایمان و کفر باز چون ارز کردم مرمون کلینی باقل کباره تو باقل ایمان و کفر رو آورده ازام بایی از این زاوی آورده حدیث شماره 19 هم که باز هم از ابن عبی عمره این هم در ایمان و کفره حدیث شماره 20 این حدیث رو در مرحوم شیخ توسی اوبرده و طبعا از انفرادات شیخ توصی سند رو هم مرحوم شیخ وسائل کم کرده و کزالک مصر رو هم برده ایشون کم کرده هر دو رو این حدیث مرحوم شیخ توسی به اصنادی ان ابن اغده ابن سلطه نظر اشون توسط ابن سلطه احوازی آساب نظر ابن سلطه آثار احمد بن محمد ابن سلطه احوازی آثار ابن اغده رو نهر کرده شیخ توسی چهارسد و شهست و قاتش و هشت به بغداد آمده ظاهره هنوز ابن سعد زنده بوده ابن سعد شاگرد ابن عوده است و شیخ طوسی رحمت الله علیه این مطلب رو نجاشی نگفته اگه نجاشی می‌گفت خیلی وصول اون بیشتر می‌شد شیخ هم خب درو قالو نمی‌شه درش این ایشون میگه من دیدم ابن عوده به خط خودش اجازه داده آثارش رو به ابن سعد خط خود ابن عوده بده و معنی میشه در اون زمان واقعا بعضی از مسائل جنبه‌های تشریف یا تشریفیاتی داشته یا شخصیتی بوده چون ابن سل در وقت وفات ابن عوده در سال وفاتش همین اجازه 9 سالش بوده چون سال وقتدادش موجوده ابن سل تا در زمان وفات ابن عوده نه سالش بوده ابن عوده که این بزرگاه تمام آثار شد حتی خودش میشان اجازه در نه سالگی از مطلب است. به هر حال چیزی در حدود مثلا فرض کنید که 408 دیگه یعنی 75 سال بعد دیگه حتی بعد از وفات ابن اوغده مرحوم نجایش شیخ این اجازه را دیشون میگه بله این محمدت مخضر به نظر ایشون از اشائره کوفه باشه ثابت نیست ایشون از اشائره قم باشه اون در حالش حاضر خیلی به ذهنم نمیان احتمالم داره از زیدی ها باشه مثل خود ابن اوغده و وشا هسن نه علی وشا هن عبدالکریمه نه امر در خود تحذیب در بخص امفال تحذیب اینجوریه عبال عباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عوضت الحافظ الحمدانی الحمدانی, الحمدانی. مال حمدان یمنه و ایشون از حافظ مقامش بالترین یه سی ست هزار حدیث و سنده و مثلا حفظ چیز اولوبهیس یعنی واقعا ما در دنیای اسلام یک چند تا داریم که این طور خیلی فوق العاده است این واقعا انسان تحییر بیدنه انا ابي جعفر محمد بن المفازله ابن, ابن ابراهيم اشعري ظاهرا اشعاري اشعر كوفه باشه ثابت نیستشون با اشعاري قم رابطه داشته ظاهرا قال حدثنا حسن بن علي بن و وهو المشاء الخزاز خودش لش يعني یعنی جامعه رو به اصطلاح آراسته خزم همون طوره خزاز يعني یعنی خزرو ميفروخته طاوچه هایی بوده که از حیوان معروف به خر سمور و سنجابونا و هو ابن بنت به الیاس این الیاس ایشون اکتفا کرده به الیاس من عرض کردم وقتی الیاس شخصیتی باشه به اسمش الیاس بن عمرو بجری از شخصیت های کوفه است هم نیست در که ایشون الان خیلی شیعه شیعه باشه اما ایشون ابن بنتشه نوه دختریشه و شاعر معروف و کان وقت سم فقطه این اصطلاحه وقف یعنی وقف علی ابن حسن رضا ثم فقط یعنی قطع به علی لذا تا یک مدتی کسانی که به رضا ایمان داشتن قطعیه میگفته است این قطعیه اینجاست یعنی فقط وقتی یقین پیدا کرد و ملتزم شد و ایمان پیدا کرد به امامت حضرات قطعیه این معنا انا عبد الكريم ابن حالا البته این راجعه این که آیا واقعا و شاه واقفی بوده بر درگشته، احتیاج به بحثه داره که فرنجاش اینجا دیسته وقتی اینشون رو ارزو کنم اما عبدالکریم ابن عمر خسامی ایشون قطعاً واقفیه و سلام هست قدم مرد با معلوم اطلاعاتی روازشم زیاده و اجلا موشتن بکنم معروف به کرام عبدالکریم ابن عمر خسامی کرام ام عبدالله ابن عبیعفور این ابن عبی افور که خوب معلم نخواد این سم نشمانم میشه قبول کرده در قبض سامت این رو ما نمیشنسیم احتمالا هم سامتری ساکت از این ازون بچه سامت بوده نبیرون چیزی بکتیش یا اسم رمزی بوده نمیخواسته اسمش رو دیان بکنه هیشون در اونجا دارن عبی عبدالله قال اکبران کبائر سر اون اشکر کبالله الحظیم و غفل و نفس ولتی حسب والله الا بالحق الى اخری ما دو تا روایت داریم در این روایتاتی که در کوائل فعلا دیدیم ما حالا روایت باشه بعد از این که امام علیه السلام کوائل کردن تکفیر می دن کوائل رو بر اون چیزی که مثلا جامعه اسلامی باخامدار پذیرند کردن مثلا در اینجا داره اما بشر فقط بلغكم ما انزل الرافید ما قال رسول الله دو على الله علی رسوله و اما قتل نفس الحرام فقط قتل, قتل حسین و اصحابه این ما یه روایت دیگه هم داریم که احمد علیه مسلا فرموندن تمام این کبائر رو این امت نسبت به ما انجام دادن استلاحا در اون زمان بینیم گوتن تعویل این قیل تفسیری یعنی به استلاحی مفتری باشه بعد در خارج اینیت پیدا بکنه این میگن تعویل اونه این جز احادیث تأویل حساب میکنن اما مثل مرحوم حساب وسائل فقط صدر حدیث نرم کرده اون قسمت تأویلشو نیابرده در این چاپ به مرحوم رنبانی قسمت تأویلشو هم آمده یکی دیگه هم داریم احساس برای این نداره یکی دیگه هم داریم که در اونجا هم همین تأویل آمده و بعضی هاشم خیلی عجیبه یعنی ما برده نمیفهمیم این. ما یعنی الان در اون چه که ما داریم شواهد فعلی نداریم تو اون دو هم داره انجام داره مثلا داره به هم ما محسنات المحسنات تهمه به به زنهای پاکدامن و عفیب فقط قذف و فاطمت علیه السلام الان منابرایم من هر حضوز داره تو بعضی شواهد تاریخی که ما روی منور هم علیه ابن عبیتال رو نهر کریم هم هستاییم و هم فاطمین داریم دیدن اما این تعبیر رو من ندیدم تا الان سالو حرمینیست که اون مرد سلمان زده که چی؟ که چه که چقدر میرید نشیدم ربایت این الان این داره که قرد بود خاطنه این رو من الان ندیدم الان نمیدونم شاید مثلا این مطلب. اون مسئله شوان را ندیدن تا الان که به سلمان گفته باشه الان این مسئله قرد آیا چی بوده؟ احتمال هم داره که مدتی یک عراجیفی گفته می شده بعد جمع جورش کرده احتمال داره الان تون داره که من دیدم در روایاتشون حتی اخیراً خب بعض از این وحابی ها بعض این خوبصه ها که وحابی ها نواصر خیلی تون راجعه به اهل بیت نواشتن این هم نیدم تا حالا من خودم من نیدم مگه همین که ایشون فهمیدن این من نیدم حدیث شماره 21 این همه اخر توضیح بدیم این کتاب علی اینجاست اما نوثث اختیار بهار بوده و در اختیار صاحب وثائقه انا اخير نصيب از ازعف نسخه سر تو اهل علتی الاتی قالا حاضر انتشره کبائر و سوال الاتی اوجب الله درسته این در این کتاب هست اما این کتاب ثابت نیست که تو او باشه حدیث شماره 22 ناقل شیخ صدوق به اسنادی یعنی علی بن حسان این رو در خسال هم نقل کرده و در الالم بله بله بر به علی بن حسان و همش عبدالرحمن نکسیر ما یک علی بن حسان داریم که واسطه اهل واسطه عراق اون سلسله یا علی ابن حسن داریم که از بنی هاشم هست از از ضعیف کاملا ضعیف از خط قلو هم هست خیلی ضعیفه این اون روایت دوومی است که به شما گفتم ما اصلا دو تا روایت تعبیری داریم یکیش اون حدیث سامس ورود که تعبیر کرد کبایل رو به اون امه راجمیونا ارتقا دادن یکی دیگه می حدیث عبد الرحمن بن كثير ایشون هم از بنی هاشمه ایشون را تصرف خودش حرو شده ما که رود باتشون هتل کتومو. حسان و حاشمی و عبدالرحمن بن كثير حاشمی ما فعلا كثير میخوایم در اون زمان این لفظ کثییر بوده. كثیر نبوده کثیر. خلاص. این دوره داشت. آن عبد الله آن و من این حدیث ازدواه اونجایی که من دیدم شد احادیثی هم باشه این دوتا تعویل کردن که امت تمام این کباره رو نسبت به ما انجام داده. این هم راجع به مرحوم شیخ صدوق رضوانون داتاله علیه که این حدیث رو اورده در همون که در این دکتر فقیق اورده در کتاب فقیق باز آورده روی امنالهی الحیف وسیلیم این رو کباره این که تعبیر حیف امرده شد تو معتبر نهید لذا تعبیر به حیف کرده که خودش قبول داشته باشه این همچنه بعد آید رویات ما آمده یعنی این آمده که حیف دروسیه اجازه کبایه و به اصنادیه انا احمد ابن مرز اصناد صدق صدق به احمد مرز اصناد ندار انا عباده ابن کسی رو نبلا قارسه ام تا عباد جعفر انا کبایه قال کل ما اوغدالله عليه انده ایشون سرد نداره رجب حدیث رو باست پر بعض چون وقت نداره هر و خارج اینما میشه رو مفید باشه برای المنحن.